اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین مالکیت فکری جلسه هفدهم در رابطه با روش اثبات تملک اموال فکری که مهمترینش رو گفتن حیازت هست البته حیازت به معنای آم میش که با دقت در معنای لغوی به دست آمد و الا به حسب عرف عام حیازت نسبت به اموال فکری صدق نمی کند چرا؟ چون حیازت در جایی است که شیع موجود باشه مالی موجود باشه و فردی از افراد انسان، برود بر او سلطه پیدا کنه او رو تحت استیلا و چنگ خودش قرار بدهد اونگاه صغف میکند هازه، حیازت کرد یعنی به داخل مجموعه تصرف خودش کشید و آورد و دور او رو حسار کشید و او رو محدوده براش قرار داد و او رو تحت سلطه خودش قرار داد لذا اموری که مارکت فکری حساب می شوند، اینها تا قبل از به وجود آمدن که حیازت صدق نمی کند بعد از به وجود آمدن خب اینها محصول و مصنوع این است در حقیقت او خالق این است به این ملکیت امور فکری و معنوی تکینن ملک این مخترع و مبده و کاشف و پدید آورنده است یه دیگه حیازت صدق نمیکنه. مگر اینکه بگوییم بگویم حیازت ام است از اینکه انسان چیز موجود را بره به دست بیاورد و به چنگ بیاورد یا خیر چیزی رو خودش ایجاد کند او رو هم بگیم حیازت در این صدق می کند حاضر با به وجود آوردن چون در ملک این فرد خاص این محقق شده است در نتیجه او این را حیازت کرده است خب در رابطه با روش های حیازت مسادیق اموال فکری گفتن اموال فکری پنج دستن یک دسته آثار ادبی و هنری هن که این رو گفتن قبول دارند که به مجرد موجود شدن این در ملی که اون طرف قرار میگیرد اعم از اینکه ای رو به ثبت برساند یا نرساند فقط به ثبت رساندن مستلزم اینه که این یک امتیازاتی نتیج نصیب او می شود که دیگران از او محروم هستند در یک موقعیت برتری قرار میگیرد خب لذا گفتن در آثار ادبی و هنری بله حیازت بله در اینجا برای حیازت او سبت ملاک نیست به مجرد ایجاد اون خلق اون to به creation طرف در میآید که that که به نظر ما این حالا حیازت گفتیم سایلا نمی کنه عرفاً مگر با دقت ادبی و تحقیق منات بگیم این رو و بر فرضم صغ بکند مطابقه با قاعده است چون مخلوق و مصنوع اوست و در نتیجه اینکه شیئی مصنوع فردی است یقیناً موجب قرارداد وجود ملک کسی می شود چه سخت بشود چه سخت نشود اما دسته دوم هن Inventions و طرح‌های صنعتی industrial Decisions. این دسته اموال خب در محدوده مالکیت صنعتی حساب میشن و مورد حمایت قرار می گیرند ادعا شده که حیازت اختراعات و طرح‌های صنعتی متوقف بر این است که به ثبت برسند و قبل از اینکه ثبت بشن این مال مباه حساب می شود که قابلل قابل تملک است برای هر شخصی ولا و غیر پدید آورنده به بیان کردند که در این موارد قانون گذار ثبت رو مرادفه با حیازت گرفته است و به دنبال ثبت است که تملک می آید، ولا و کسی که ثبت کننده است پدید آورنده، واقعی نباشد لذا طبق قانون این گفتن اگر دو نفر یا چند نفر مستقل از همدیگه یه اخترای واحد کرده باشند اون شخصی که اظهارنامه اخترای خود زودتر تسلیم بکنه یا اگرم دیرتر تسلیم کرده ادعای حق تقدم میکند و اینو میتونه اثبات بکند خب در این صورت می میشود مالک اون اختراع مشروط به اینکه این اظهارنامه‌ای این رو که داده است به اداره ثبت اداره مالکیت صنعتی این مسترد نشود توسط خود اون کسی که اینو تحویل داده یا از طرف اون اداره رد نشود فرض گفتن دیدن این تقلبی مثلا یا مسکوت گذاشته نشده باشد مشروطه به این سه شرط. هر کسی زودتر اظهار نامش رو تسلیم کرد یا ادعا کرد که من زودتر تسلیم کرده بودند در اونگاه اون حق ثبت اختراع داشت و اون مالک حساب می شود به نظر میرسد این سخن تام نیست و مطابق با ملکیت حساب نمی شود چرا؟ کسی که یک شیء رو اختراع کرد حالا چه از بابی که میگیم حیازت برای صد بکنه یا نه چون میگیم اثر شیء است مصنوع فردی است مصنوع ملک سانه است و این جزء بدیهیات و فطریات خب به مجرد اختراع اثر همین طرای صنعتی ملک او میشود حالا چه اظهار بکند یا نکند چه اینو ثبت بکند چه ثبت نکند از نظر شرعی او مالک حساب می شود انتونی بگیم مالکیت بله کسی است که اظهارنامه شو ثبت کرده باشد و به نام خودش نوشته باشد لذا اینکه بگیم آفرینش اختراعات در باب امور ترهای صنعتی دلالت بر حیازت ندارد و بر خلاف قانون ثبت است که میگه ملازمه قانونی بین حیازت یک شیء است با ثبت او که بین سبت و حیازت ملکت ملازمه است این نه به حسب بنای اوغلا نه به حسب شرع قابل قبول نیست مالک کسی که شیء رو اختراع کرده شرعا و حقیقتا او مالک است حالا اظهار بکند یا نکند ثبت بکند یا نکند قبل از او دیگری این رو به نام خواهی ثبت کرده باشد یا نکرده باشد لذا این کسانی که این سخن رو میگن باید توجیح کنیم که منظورشون مقام اثبات نسبوت ما یک ملکیت واقعی داریم یه اثبات ملکیت برای افراد و این دوتا محدودشون از هم جداست ملکیت واقعی مال کسانیست که چیز را خریده باشند از طرق عقود شرعی یا از راه حیازت به دست آوردش باشند اون امور که شرع اونا رو تعیید کرده باشد چه کسی بفهمد چه کسی نفهمد حتی ملکیت های قهری مثلا مثل ارس بله در عرص ولو خود طرفم هم نمیداند اون سهمی که از بنا بنابوده به این وارث برسد به مجرد او در صورتی که بدهی نداشته باشد ملک وارس میشود ولو هم خبر نداره اصلا اطلاع نداره که این وارث یک مبرسی بوده او از دار دنیا رفته است این ملکت واقعی است بر اظهار و حتی متوقفه بر علم خود طرفم نیست چه برسه این که متوقفه بر ثبت رسمی و تعیید در مراکز اسناد و املاک باشه مقام دوم که مقام اثبات است این است که کسی مدعی ملکیتی است این دلیل چیست خب میگه آقا ثبت کردهام خب بله اون ثبت به حسب اظهار و در مقام اثبات دلیل بر مالکیت این است نه اینکه که ایجاد مالکیت بکند و ایجاد ملکیت بنماید نماید خیر این آقایونی که اینطور میگن در این حال میگن ملازمه قانونی حیازت اختراع با سبت یک اماره تلقی میگردد پس منوه اماره بر ملکیت است نه اینکه که اثبات ملکیت بکند به حسب تکوین و واقع رضا خود ادعا می که خلاف این قابل اثبات است. لذا اگر احراز بشون کس کنمت سبت کرده مالک واقعی و قانونی نبوده است اون ملکیت منتفی می شود و دیگه از بین می رود اون چیزی که در مباد مختلف قانونهای های مالکیت است آمده است که اصل ملکیت متوقف بر سبت است یقینا تام نیست اینا همه مربوطه به است که دلیل بر اثبات مالکیت برای شخص یا اشخاص خاص یا نهاد خاصی میخواهد بشود لذا اینکه بگیم اختراعات صنعتی ملکیتش موقعی به دست می... ثابت می شود وحیزی آزد موقعی سرق می کند که به ثبت برسد و این حرفت تام می نیست بله اینها ها اماره برمالکت شخصان مثل ید قاعد ید چه میگوید قاعدیت قاعد می اگر چیزی تحت تصرف دیگری است و تصرف مالکانه درش می کنید. شما شک دارید که آیا این ملک خودشی یا نه و کسی هم برخلاف این ادعا نکرده و خودش هم اقرار نمکنه که مال مال من نیست این اماره است بر اینکه تو مالکی این نشانه مالک است اما مالکیت این فرد بر اون مال چگونه حادث شده است امکان داره حیازت باشه امکان داره ارث باشد امکان داره از معاملاتی مانند بیع امثال اینها به دست آمده باشد یا از امور دیگر اصل ملکیت شیعون اما اثبات مالکیت برای فرد در صورت که ادعا بکند و در صورتی شک داشته باشیم شیعون آخر رضا این دست دوم هم همینطور است بله منطقی یه قید اینجا باید بزنیم که این اختراعات هرهای صنعتی که ثبت شدن اماره مالیک شده برای یک سبت کنا در صورتی است که این طرح صنعتی این اختراعات صنعتی در قالب قرارداد برای دیگری نباشد یاد به عنوان پیمان کار برای غیر درست نشده باشد و الا اگر این طور باشد بله اون کارفرما یا صاحب کار است که مالک این حساب می شود و بنابراین او می شود مالک و سبت سند هم داله بر مالکیت او خواهد بود اما در این حال بین این دو مقوله کاملا باید فرگذاشت اصل مالکیت و اثبات مالکیت دسته سوم علائم تجاری هستند ترید مارک علائم تجاری در نظام های حقوقی گوناگونی که در دنیاست، متن همواره از طریق استمرار در استعمال به دست میاد یه شرکتی علامت تجاری رو کالای خودش قرار داده یا از طریق ثبت مورد حمایت قرار میگیرند خب، یعنی اگر علامتی ثبت شده باشه، مال فردی است، یه نهادیه است، عموماً او می‌شود مالک یعنی قانونگذار کسی را مالک علامت تجاری می داند که علامت رو به سبت نشونده باشد نه صرف اینکه که فقط استفاده مثلا کرده باشد خب اگر این چنین شد در نتیجه گفتند حق استفاده مخصوص به کسی است که او رو به سبت رسونده باشد خب ولی کسی جز این مالک حق استفاده انحساری از اون علامت رو ندارد و این مالک حساب می شود این مطلب هم به نظرم باز مود اشکال است که ملکیت علائم تجاری متوقف بر سبت علامت نیست بله کشف ملکیت کسی از راه های مختلف ممکنه از جمله از راه سبت اصلا فرض کنید الان کسی توی خونه نشسته خانه ای داره اگر هم نداره ادعا که خونه مال منه من مالکی نستم او ما واقعا که نمیدونیم این مال هست یا نه او خودش میدونه خدای خودش از او خودش واقعا اگر از طرق شرعی ملکیت برای ثابت شده اون مالکه ولو دیگران هم ندانند و ولی علیهشم قیام کنند اتا او مال ازش بگیرن او مالکه اما در راه اثبات راه مختلفی دارد گاهی اوقات توسط شاهد عادل میآورد که این خونه مال منه گاهی اوقات یک شاهد میآورد که قسمم می خورد که این خونه مال منه در پیش قاضی این کار رو انجام میده گاهی مقام ثبت و سند رسمی می آورد اونم همینطورم یک از راه های اثبات مالکیت است ها پس بنابراین ثبت ایجاد ملکیت نمیکنه، ها. بله صرف استعمال یک علامت تجاری، علامت منشأ این نیست که فلانی مالک این علامت تجاری است و او اختراع کرده و او اینو به وجود آورده برای خودش. خب و رو استعمال فراوان کرده باشد. بله. البته اگر استعمال از یه علامه تجاری برای یک فرد یا گروهی یا یک نهاد و شرکتی به حدی زیاد باشد و شهرت پیدا بکند که موجب اطمینان بشود که این علامت مال ایناست خود اینا اختراک کردن بله از اون باب باز هم مالکیت اثبات می شود بله لذا در این مورد سومم که علامه تجاری باشد همین طور است هر کسی اختراع کنی علامت تجاری را دارای شکل خاصی حروف خاصی نمیدونم موادی که درش به کار رفته علاغر خاص هر کی به وجود بیاره او شرعا مالکه چه ثبت بشود چه نشود چه کسی بداند چه نداند حتی امکان داره کسی بیار دزدی بکنه و به نام خودش ثبت کنه اون مالک نیست مالک واقعی همین فردی که اینو به وجود آورده است که اختراع کرده و خلق کرده این رو و به وجود آورده این رو ازا تصرف اون دووی حرامه، ولو ثبت یه سنده به نام این آقای دومی بزند دزدی اون که ملک نمی آورد ازا پیغمبر فرمودن شما میآید پیش من من بر اساس بینه و یمین بین شما قضاوت می کنم یعنی من به حساب ظاهر دارم قضاوت می کنم اما اون کسی که مال را به ناحق می مبادا برود و بگوید پیغمبر به نفع من حکم کرد او بداند این نما اخذ قطعتم من نار او بداند پاری از آتش را دارد به منزلش میبرد یعنی تو ملک واقعی نمیشی ولو من پیغمبر حکم کردم بر اساس قوانین قضایی که حرف تو درست است حق به نفع توست چون امکان رو در مقام بیان و استدلال و جدل مسلطن قویند راحت میتونن حرف خودشون رو درست کن ثابت کنند ولی خلاف واقعا باشد و پیغمبر من معمور نیست از علم غیبش استفاده کند شون به ظاهر عمل میکند صرف قضاوت پیغمبر مالکیت بر کسی درست نمی کند اون حتی داره جهنم به منظرش میبرد طبق روایتی که داریم مالک است که واقعا از طرق شریع ماری به دستش رسیده ولی دیگری ببرد سندم درست بکند او مالک نمی شود. فقط به حسب ظاهر ثابت میشه شود مالک لذا نشانه و طریق اثبات مالکیت هست اما مالکیت واقعی ازش درست نخواهد شد و طرق اثبات مالکیت هم امکان داره صحیح باشه امکان داره غلط امکان داره حق باشه امکان داره باطل اینها مالکیت درست نمی کنند خب پس بنابر در اینجا هم همینطور به صرف ایجاد ملک طرف اون طرف خواهد شد دسته چهارم از اموال فکری نرم افزارهای رایانه‌ای یا یارانه‌ای ای هستند کامپیوتری حالا اصطلاح رایجش سافت وایر نرم میان من از مجموعه دستورالعمل‌هایی که برای انجام کاری به رایانه داده بشود یا بگیم مجموعی از جملات قابل اجرا به وسیله رایان است که برای انجام فعالیتی خاص تدوین و تحریر می شود خوب اینها چطور؟ افتن بله اگر اینها دارای ماهیت امور اختراعی رو داشته به عنوان اختراع حمایت می شوند. و الا این حب عنوان آثار ادبی و هنری شناخته میشن و مورد حمایت قرار میگیرند. گیرند. گفتم بعد نرم افزار که به وجود می آید تملکش وابسته به ثبت است به خلاف آثار ادبی و هنری که اونا ثبت لازم ندارد و حتی طبق قانونم این چنین گفته شده است. بله مادامی که ثبت نشود این نرم افزارها مانند اموال می میماند که به وسیله هر شخصی قابل تملک و ثبت است نظر این سخن هم تام نیست صرف ایجاد نرمافزار افزار برنامه هایی که الان خیلی رایج هم هست و خیلیامش احتیاج دارند مثلا امور کشور در جاهای مهم متوقف بر این طرحهای رایانه‌ای است و هایی که درست میکنند به طوری که الان بسیاری از نهادها و مسائل اجرایی کشورها متوقف شده باز داشتن نرمکسارهایش در رابطه با برنامه‌هایی که میخوان اجرا بکنند این ملک کسی است که او رو به وجود آورده مگر قرارداد بسته باش که من این رو به عنوان یک پیمانکار برای دیگری دارم انجام میدم یا نه حالا به عنوان پیمان کار هم نیست خیر این به عنوان قرارداد بسته است که من این به وجود میارم که این مال شما باشه در مقابل چیزی دیگری مال من باشد خب در اون صورت بله این مال اون شرکت و است که این سفارشو داده یا اون است که این کار رو داره اجرا میکنه و اینم به عنوان آمل اجرایی او داره براش کار میکنه اما اگر کسی خیر قراردادی نداره با کسی. پیمانکاری کسی هم نیست. خودش چیزو اختراع کرده است. طراحی کرده به برنامه پزشکی را، برنامه تربیتی را، برنامه آموزشی را و الی آخر انواع اقسام داریم. طراحی کرده و به وجود آورده یقینا اون مالک حساب می شود چه ثبت بکند یا نکند یعنی ملکیت واقعی متوقف بر ثبت و ثبت رسمی نیست بله اثبات مالکیت یک طرف در صورت شک بله یکی از راهاش ثبت رسمی است آنچنان که یکی از راهاش اقامه بهینه است یا از راه مجموعه قرائن بشود فهمید که این فرد مالک هست چرا چون طبق این اصطلاح جدید بگیم او حیازت کرده است. اگر حیازت سر بکند و الا اثر اوست خلق اوست ولی اینم نمیشه متوقع بر ثبت رسمی کرد بگیم در یک صورت مانند اثر ادبی هنری است که به صرف وجود ملک اون مختره است اما در صورت دیگر نه باید به سبت برسد تا تملک, ثابت تملک این فرد اثبات بشد و ثابت بشود. دست پنجم از مالکت های فکری اصرار تجاری هستند. Trade Secrets اصرار تجاری عبارت از مجموعه اطلاعاتی که مربوط به روش و فن ساخت و تولید کالا و محصولات و برنامه یا فرمول کار و طرح و مهارت‌های عملی و تجربی تولید و عرضه محصولات در بازار است. و بدون اونکه عموم مردم یا رقبا کسایی که رقیبن در رشته های این موضوع فعالت اقصد و تجاری از او به شرطی که آگاهی پیدا نکنند خب گفتم فرق این اصرای تجاری به عنوان یک مال فکری با دیگر شاخه حقوقی مالکیت صنعتی این است که سر بودن این مزیتی حساب می شود برای کسی که دارنده این اسرار تجاری است ولی اگر این اسرار افشا بشن یا ثبت رسمی بشن موجب زوال اونها می شود خب بالاخره اگر ثبت بشه برای امکان داره منشه امتیازاتی برای صاحبش بشود اما دیگه سر تجاری تلقی نمی شود خب پس بنابراه اگر کسی اینها رو سبت بکند ها دیگه ملکیتش زائل می شود در رابطه با تحصیل ملکیت در این دسته از آثار بله میگن به مجرد اینکه خلق شد و یا استلاحاً حیازت شد ملکیت حاصل می شود و اون کس که اینو به اسرار تجاره به وجود آورده مالک او حساب می شود خب نزا این می شود در محدوده حقوق مادکت سنتی جاداد اما بله در اینجا در صورت این اسرار به سر بودنشون باقی بمانند آن. امور موقع ملکیت بر اون صاحبش ثابت می شود یعنی به شرط که قرصه محفوظ بمانه محرمان باقی مانه اون می شود ملکیت دارد و یه امتیازی بر دیگران دارد و الا اگر از حالت سر بودن در بیاد و دیگران بفهمند اینو نمیشه بگیم یک مال فکری به نظر این هم قابل اشکال است اصرار تجاری اگر خاصی است که تخصص لازم داره تبهر لازم داره علم خاص لازم داره زحمت خاص باید روش بکشن تا به وجود بیاید این هم مال حساب می شود حالا چه افشا بشود یا نشود سر بشود یا نشود خب اسرار تجاری بودن ولو افشابش فاید این نیست که اون کسی که اینو به وجود آورده مالی که این باشه این مال اوست او اینو به وجود آورده ولذا دیگران هم اگر خوان استفاده کنند ازن او لازمه و او باید اجازه این کار رو بده و الا چه فرقی است بینه اسرار تجاری با نرم رایانه‌ای با علائم تجاری اختراعات صنعتی، آثار و هنر عدبی وقتی که صف بشن اظهار بشن علنی بشن خب همه پی میبرن نقصد در این دوره که قفل شکن زیاده که قفلهایی دارن که رمزها رو میشنن و کشف میکنن یعنی حالی که کشف پس پس ملکتون آقا بین رفت چون همه فهمیدن و میتونن استفاده کنن مثل انبال موبا حساب میشود خیر اگر واقعا اسرار تجاری هم این هم که با زحمت باید به دست بیان اونها هم همینطور اونها هم مصداقی از اموال فکری حساب می شوند. و چون فرد یا افراد خاصی اونو به وجود آوردن ملک اونها حساب می شود. یا از باب سون و خلق یا از باب حیازت به معنای وسیعی که براش در نظر بگیریم لذا به ثبت رسندن اظهار کردن علنی شدن شیءی مالی را از ملکیت کسی در نمی آورد. اونند اموال مادی معمولی شما خونه خریدی چه کسی بفهمد چه نفهمد. اون فهمیدن چه به نظرتون بگیرن یا نگیرن ملک ملک شماست. رضا گفته شد اینکه میگن احتیاج به ثبت داره و در قوانین حقوقی این شنین نوشته شده است. اگر منظور اصل اثبات مالکیت است که این مخدوش و قابل قبول نیست. اگر منظور اثبات تملک است اینم هم در همه آثار است. بین هنری و غیر هنری فرقی کند و اینم یکی از راه‌های اثبات مالکیت است ثبت و سند. ثبت دولتی و قانونی و دولتی. از راهیدی هم قابل اثباته. هم از راه بینه هم از راه شاهد واحد و قسم خوردن یا از قرائنی که موجب اطمینان بشود که این آقا مالک است نسل الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین